م جهان جنگ فریاد من هل هل یه سال سفید سر قدمار بند بر داری من دچره اونه و رحه از بشر جهان جنگ فریاد من هل هل یه سال حارت سر قدمار بند بر داری من دچره اونه و رحه از بشر شلوش ایفور ها اعلان جنگ دنکر میکشان افراد تمه مگاه تا اذار دختر دوز بردم بازم قات برو روز سرپیچی کوچیک که تا غروب بردگی تا این دوچه پیرزن تو عوا میزنه چرخ جنگ هسته ای به هم شعا صحی نیست یا اثرات اکتیو پا گرفتن همه جهان جنگ هیتلر مقصر یا توطعه ته خودات ته روشن نقش انجار و نهجار تصنی کنترل ذهن دود عوام استراتژی که دول رو بود دوان کااتبی تو های ایران توپه چلتیچه که بهستان تو اندام با چپکی می خیابون و مسلی یا تکه چشمت که نشونه در راه پور آبدی کور همه ناغوسی به دوش که افغان اخ کاکا سیاه بده آریایی جنس اعلی سفار هیتلر بریزش دور آره تمدن نشون نمیده توی تاریکی نور جهان جنگ فریاد من هل هل هی پارت سفید سر داره بند فردا من گجن روونه و رهاش بشر جهان جنگ فریاد من هل هل هی ثله پارت سفید سر قصار انصار من دجله روان و رهاست بشد اعلام سال فرمالیت خبر جنگ بعد رادیو موج آسمون خاور میانه قمار بمب جسدای پاره پوره فر صدای قدرت دیکتاتور را رکن گوشتای دمه توپ ازامی به سوریه سیاست کثیف لیدره یا پرورش دومیسیکا سپاه ابره جنس فشان کوچو خون یا آسخونه فوکمر توش سر دلار متاتا تو لوفتونیو مافیا حکومت میکنه ولی بزاغه دجله ولی هنوزم گلوله هاش لک میشن هنوز سر بیگنا پایچوبه داره هنوزم مردمرو مردم کشته میشن هنوز هم نشات ملاج زلاعهکش و جمعی می سادم میگم با صدفاع شکاف کابل و خمار با مرده ها شکار لنگ ایستان بیاد زشون کنه هنوز خفقال پاپی چه ملت ک کریمی تو تونل سپر اهل به چه مثل جوشن با آرایش قلی ففران عدیان تو ببعی و خده همه ساختگی بر همه برحقمه منم ولی مردم بردن بذا به لعرضه آزادی یا بهنگگی میدونن به یه تو اندیشه حبس روشن فکر تو حصره ولی فالگیرازاد ام سانتی مانال ام سانتیمانال برابری پشمه بیت طلوات سبز تربیت توسی اطفال موثر استرس سرس سرس با تع تععادل تجاوز تو چار دیواری بی اختیاری از ترس تلویزیون و نقش نونه تیریبون ولی آسفالت گهواره جنین نوزاد توده کور انقلابی درکانی س اعتراست و سو تاکسیران ها سوغوم گنده آب نسبت آهاد تمران ماضاد تمران مزاترمشه شاریم جنگی با هم همه جهان جنگ فریاد من هل هل ای صلح پارچه سفید سر قددار بند فردای من دجل روونه و رهاس بشن جهان جنگ فریاد من هل هل ای صلح پارچه سفید پار پارچه سفید سر قددار بندجله روونه و رهاس بشن دجل ایران